روی بن ما و مراگو گو که ز جان دل برگیر پیش شم آتش پروانه به جان گو درگیر در لب تشنه ما بین و مدار آب بر سر کشته خیش و ز خاکش برگیر ترک درویش مگیرر نبود سیم و زرش در غم سیم شما رشک و رخش را زرگیر چنگ بنواز و بسازر نبود اود چه با آتشم اشق و دلم اود و تنم مجمرگی چنگ بنواز و بساز ار نبود اود چه با آتشم اشق و دلم اود و تنم مجمرگی در سمای و زستر خرگه و برست بر نبا گوشه رو و خرقه ما در سرگیر صوف برکشد سر و باده صافی در کش سیم در باز و به زر سیم بری در برگیر دوست گو یار شو و هر دو جهان دشمن باش بخ گو پشت مکن روی زمین لشگر گیر میل رفتن مکن ای دوست دمی با ما باش بر لب جوی ترب جوی و به کف ساغر گیر رفته گیر از برم و زا تش دل و چشم گونه زرد و لبم خشک و کنارم تر گیر حافظا راست را کن بزم و بگو واعز را که ببین مجلسم و ترک سر من برگیر